با درود خدمت بینندگان گرامی بخش دوم زندگانی کستوی را امروز شروع میکنه حضورت نماز که در جلسه قبلی به این نتجه رسیدیم که کستوی مشروط خواه شد آخرین سوحنی که از زبان کستوی بنده مطرح کردم عبارت از این بود چون کار مشروط خواهان پس از بدی او به نیکی گذارده و در سایه مردانگی های و دیگران روز به روز مشروط خواهی به نیرون یود، این ها که به من رسیدی مرا بسیار کردانید کسری ادامه میده زندگی شد تا دو سال این در تاریخی است که ۱۲، 8 مشروطیت، در تا روز سوم تیر 1286 هشتا... پس از این 1286 که مشروطیت که 14 مرداد انجام گرفتید بمباران مجلس شد به اون ام رسیدین که در سوم تیر ماه 1287 هفت... پس از این بمباران مجلس تبریزیا ها باخواست و اینم گفتیم مبارزه کردن تمام مملکت ساکت شده بود کسی جرعت نمی کرد بزنه تنها کسانی که تونستند جلوی حکومت مرکزی قرار بگیرن مردم تبریز بودند. البته تاریخچش مفصل تره از مردم تبریز هم پشترش انجمن شهر تبریز بود پشتر انجمن شهر تبریز انجمن قیبی بود که همه اینا خدمتون مطرح بود در جنگهای تبریز با حکومت مرکزی محمد علی شاه حتی از غفغازیه هم کمک میومد ارامنه هم کمک می‌آورد، بنده اینا رو حضورتون عرض خواهم کرد سر فرسه. فقط تصمیم گرفتم که از این تاریخ بعد اگر کتاب مناسبی برای پیدا کردن منابع در اختیارم باشه خدمت بینندگان مطرح کنم نشون بدم تا کسانی که علاقه مندن میتونن برن دنبال کتاب و این مسئله رو بررسی کنند منهای کتاب تاریخ مشروطیت و تاریخ 18 ساله که کتاب کاملیست و کتاب های مشروطیت ملکزاده دکتر مهدی ملکزاده و یحیی دولت آبادی و از کنم کتاب تاریخ بیداری ایرانیان و و و, و یک کتابی که زیاد معروف نیست ولی مهم خواندنش برای شناختن جنگ حالی جان و تبریز کتابیست به نام بیام آزربایجان در انقلاب مشروطیت این کتاب رو کسی به نام رضورتون عرض کنم اینجا نویسنده کتاب مهندس کریم تاهرزادی بهزاد بوده که خود عضو انجمن قیبی بوده بنابراین این تمام مشکلات هم البته نه تمام تعداد فراوانی از مسائل و مشکلات همین انجمن غیبی و جنگ هایی که اتفاق افتاده در اونجا مجرح کرده است حال ما ادامه پیدا می‌کنه تا میاد تا زمستان 1290 خب که بردارم هم به سخن من در اینجا است که فقط گفتن خود کسیبی کسی خواهد بود در کنار کسزری تاریخی که مربوط به زندگی کسزری باشه و خودشم در کتاب آشته بشته به اونم به طور خلاصه البته بدون که زمان ما وقت ما از دستمون بره چون وقت مسئولان تلویزیون به من اشاره کردن در گذشته که وقت باید محدود باشه بخش قبل من زیاد صحبت کردم به هر حال میرسیم به زمستان سال 1290 مثلا سال ۱۹۰۰ یک درگیری بین باز مردم تبلیز و خوبهای روسیه در گرفت خوبهای روسیه در شهر تبلیز خب چه جوری شد اینا اومدن در شهر تبلیز؟ در اون تاریخی که تبلیزیان در جنگ بودند قهدی اتفاق افتاد برای اینکه مملکت از شهر تبریز از شش بار به وصله حکومت مرکزی محدود شده بود در از قسمت شهر که مثلا این و دوله بود که نماینده کوای حکومتی بود که در باسمه نشسته بود اجازه ورود غذا و مواد غذایی رو به داخل شهر نمی بیاد بیا مرتزا قلیخان اقبال سلطنه حاکمه ارز کنم ماکو به نام سردار ماکو از طرف ماکو مملکت و شهر رو در محاصره گرفته بود شاهر شاخصفن از طریق شاخصفن شهر رو محاصره کرده بودن شجاع نظام مراندی در مرد نشسته بود خدمت از رحیم خان و پسش پرویف خان قراج داخلو در احر و عرصباران نوشته بودن و بالاخره سمت خان شجاع دوله هم در از طرف مراخه شهر تبریز رو به محاصله گرفته بودم به دین امید که مردم از گروسنگی به تنگ بیان و تسلیم میشن در این میان مردم تبریز سران تبریز متوجه شدن که این کار درست نیست اگر چونان که خودشون میتونن قحطی رو تحمل بکنن ولی اگر قحطی به کنسولگری ها برسه بدون شک کنسولگری ها قوا وارد خواهند کرد سعی میکردن که این کار نشه که در کتاب تاریخ 18 سالش به این مطلب اشاره کرده می نویسه که در تا بلاخره مردم قهتی به اوج خودش در داخل تبریز رسیده که میگه که مردان مبارزان در جبه ها جنگ می کنن روزها و بانوانشون زنانشون بچه هاشون میرن به باغباغات علف ها رو می چینن میارن تو خونه قضا درست می کنن از اون و وقتی به اصلاح مردا برمیگردن خونشون فقط این خساره میتونن بخورن و اینه که در تبلیز یک دوره اصلا فونت بود میگفتن که ما علف خوردیم یونجه خوردیم مشروطیت رو گرفتیم خب بنابراین خودشون میتونستن تحمل بکنن از جمله کسیدی میگه که در همون اواخر چند ماه بود که یکی از ارامنه رفت بالای منبر که صحبت کنه در این فرصت باید از ارامان هم سپاسگزاری کرد که خدمت کردن در این جنگ های تبریز و محمد علی شاه به تبریز یا خدمت زیادی کردن این اسم این ارمنی صدیق بارون سدیک بوده رفت صحبت بکنه صحبت رانی بکنه که از میگه چهره تمام جنگ, جنگ بودانه زرد زرد بود از برستنگی سدریک صداشو بلند کرد با این واجه شروع کرد ساخن رانی شایی مردم می دونم که گرسنگید ولی آزادید این یک ای بود برای تبریزی ها به هر حال گرسنگی به لخر قهطی به کنسولگری ها هم سرایت کرد به محص که به کنسولگری ها سرایت کرد کنسلگری روسیه تزاری در تاریخ 5 اردیبهشت 1288 به قواش دستور داد وارد ایران بشن و بعد وارد تبریز بشن به این بهانه که دارن غذا وارد تبریز میکنن خب طبیعتا مواد غذایی وارد کردند ولی از اون تاریخ به بعد شروع کردن های فراوانی کردن مردم را اذیت کردن و تا بالاخره در 29 و 29 همه. آزر 1290 دو سال تمام قوای روسیه در تبریز جنایت کرد آدم کشت 29 آزر 1290 همون مبارزان جنگ روی دوره محمد علی شاه که با اون می جنگیدن دوباره دست به بستهه بردن زیرا به جان آمدن از جنایات و از ستمهایی که قوای روسیه قوای مهمانان ناخوانده با مردم مملکت میکرد تا فرنگ به دست گرفتن شروع کردن با نظامیان موسیقی درگیر شدن هیچ وقت این مئلهی مصح... مصح... مصح... رو نمیتونستن قبول بکنن که یه گروه شروع میکنن جنگ کردن چهار روز این جنگ طول کشید دستشبی میگه هر کسی کاشکی میدید و میفهمید چه میگذره؟ مردان تبریز می جنگیدن میکشتند و کلشته می شدن هر مردی چندین سرباز رو میکشت بلاخره نظامیان روسیه رو اقبراندن رفتن تو به منطقه نظامی خودشون که باقشمال نامیده می شد تاریخ خب پشت سرش به لحاظ به تاریخش دولانیه اینا حاضر شدن خدسلا بکنن به خواهش قوای مرکزی و به خواهش سفارت خانه های انگلیس و روسیه به محض اینکه که خودشون رو اصلاح کردن دوباره قواه روس این دفعه با وضعیت خیلی خشنتر شروع کردن دانه دانه کسانی که جنگ کرده بودند مبارزه کرده بودند اینا رو گرفتن و کشتن از یک طرف والی تبریز سمت شجاع دوله می کشت. دست نشانده همین روزها بود و از طرف دیگه نظامیان روسیه می کشتن. تا اونجا که در دهم محرم 1330 می شد دهام دیماه 1290 نهتن از بهترین ها رو کشتن به دار زدن و بعد از آن هم مرتب هر روز صبح و شب یا می یا به باره علاوه بر کتابی که حضورتون معرفی کردم در اول کتاب دیگری هست به نام نوشته یه تقیزاده از از لندن و این کتاب هم حتی با اکسه هاش این مسائل, رو، این مسائل کشت و کشتار مردم تبیز رو نشون گید این تاریخچه چیه کچلوسته ما میدم وارد زندگی کستوی میشم زمستان 1290 کستوی برای کستوی سال صدمش سازی بود در آن روزها تبیز در دیره جنگ های دور که از کردم جنگ های مسلحانه بین مجاهدین شهر و قواهی روسیه بود مجاهدین بازمانده همون گروه هایی بود که در جبه ها جنگیده بودن و قوای محمد علی شاه رو به رانده بودن در شبهای محرم کسبی دیگه حالا ملا شده عمامه گذاشته ابا داره در شب های محرم از بالای منبر سخنرانی میکنه به نفع مجاهدین به نفع مبارزان تبریز بر علیه قوای روس بعد در اون تاریخ کسانی که تاریخ آنجا را خواندند وحشتناک بود مملکت شهر دست بیگانه بود میکشتند کسی جرأت حرف زدن نداشت ولی کسبی این جرأت که همون قدم اول ملایی رو با مبارزه بر علیه اشغالگران شروع کرد از طرف دیگه ملایان حکم آباد همه اکثرشون ها و همه مطلق گرایی نکنیم طرف گوزها بودن، اینها هم شبو کردند، از کسوی بد گفتن بر علیه کسوی انگ زدن، بر علیه کسوی دشمن دادن وقتی اینای ای کارار کردند، پیروان اینا هم همینطور با کسوی دشمنی کردند. وقتی کسوی دیگه, دیگه در این اینجوره دیگه جزء آزادی خواهان شده بودم در اون تاریخ یک انجمن کوچکی تشکیل داده و در نظر دارن این چند نفری که ملحق بشن به مبارزان تبلیز جنگ کنن با قوای دیگانه خودش در این باره می نویسه در کتابش می نویسه یکی از کسانی که من کتاب کسری و کتاب زندگانی من کستویر هم اوگردم خدمت شنبندگان بینندگان گرامی نشون بدم که بنده از روی این کتاب زندگانی دستوی رو مطرح میکنم به اضافه تاریخ هایی که در کنارش مطرحه خود در این کتاب می نویسه یکی از کسانی که زندگانیش به سختی افتاد من بودم زیرا در سایه شور و صحش های آن چند روزه در شمار آزادی در آمده بودم و این لودملایان ملایان زبان به تقیرم میگ و مردم را به روگردانی از من بلکه به بدگویی باز میاشتم در هر نشستی نیش, ها... نیش های زبانی میزدند از تلخ گویی دریغ نمی کردن. به ترتیب رفته رفته راه کسدی از راه ملایی جدا می شد زیرا که مردم دیگه نه, سلام، نه تنها سلام نمی سلامش رو هم نمی دیرفتن. در چون انداخته بودند که کسدی کافر می بابیه در آن تاریخ یه چونی چیزهای انگهای انگهای بزرگی بود و هر حال و کسرمی به تنگ آمده بود باز خودش اشاره میکنه به این مسئله میگه در برابر همه این بدیها یک نیکی در نام و آن اینکه بشوند یعنی به علت همین پیش از یک سو مردم نیز از من نومید شده دست از گریبانم برداشتند. <coughs> و به زنجیر ملایی از گردنم برداشته شد خب کسری در اواخره پس در اون تاریخ از ملایی میاد کنار بلاخره لباس میزده کنار امامه رو میزده کنار با لباس شخصی مثل تمام افراد میاد میشه تو خونه دیگه ملا نیست در این تاریخ که اومده کنار اولین کاری که میکنه خودش میگه که نشستم تو خونه قبل از هر چیز شروع کردم به مطالعه کتابهای حساب و هندسه و جبر و مقابله و ستار شناسی و فیزیک و شیمی همه اینا رو شروع میکنه در خونه با ولع خوندم همچنین کتابهایی که به هر حال در اون تاریخ در تاریخ هم مشروطیت هم قبل از مشروطیت اغلب مشروط خواهان اغلب مبارزین کتاب ها رو خونده بودن که آگاه کننده بود شروع میکنه به خودش میگه به کتاب سیاحتنامه و کتاب احمد طالب سیاحتنامه ابراهیم بی است که نوشته هاش زین العابدین مراقعیه که یک تاجزاده است در مصر که مدت 50 سال با پدرش رفته اونجا میخواد بره مشهد برای خراسان مشهد زیارت وارد ایران میشه زمان مزفردین شاه وز مملکت رو بدبختی از بار مملکت میباریده وحشتناک بوده شروع میکنه خاطرات شده بشتم این کتاب رو یکی از بهترین کتاب هاست که برای شناختن محیط آن روز ایران که چه برماغ همچون همچنین شخصیتی مثل عبدالرحیم طالبوف کتاب های فراوانی نوشته از جمله کتاب احمد یا کتاب احمد یا خدمت رو عرض که سفینه تالگی این هم یکی از همون کتاب است که مثل کتاب قبلی است فقط از این کتاب بدونید چی نوشته یک بخشی چند سطحی در بیرونش اولش خود طالبوف نوشته که من این رو میخونم به, بحث به این بحث ادامه نمیدم نوشته حکیمی میگوید آنان که آزادیشان از دست رفت اگر منتظر بشوند که غاسبان با تیب خاطر به ایشان برگردانند آزادیشان رو بهشون برگردانند عمر آنها کفایت نیل به مقصود را نخواهد کرد پس در سر حفظ حریت باید مرد و زحمت انتظار را نیز نکشید خب کسبی داره مطالعه میکنه داره بخواد معلوماتشو رو اضافه میکنه انقدر شور مطالعه رو داره کسیدی داره این رو میکنه ولی از طرف دیگه اون دورهی هم که باز در خانه نشسته با اون انجمنی که تشکیل داده در کنار مطالعاتش در اون انجمن میشینند به فکر وطنان به فکر مملکتان که چه کار کنیم میگه در آن روزهای سیاه التبريز که صمدخان شجاع دوله حاکم شهر تبریز دستشان نشوندهی دست در دست قوای اشغالگر روس هر روز دهاتن از مردم آزادیخواه شهر را اعدام میکرد آنان در خفا مجلس میاراستن و, و در سوگ آزادی برباد رفته ماتم میگرفتند بنده فرصت امروزم هم تمام شده و بخش بعدی را در فرصت دیگر در بخش بعدی ادامه مطلب رو بیان کرد. سپاس از